اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی نبینا و عاله نبی تا خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم و روز بخیر عرض میکنم. الله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار هستید و از هر گونه آفتی بدور ما بحثمون در تشبیه به انتها رسید و تشبیه مقلوب و معکوس را هم خوندیم که جای مشبه و مشبهان به عوض شده و در واقع وچ شبه در مشبه فعلی قلیتر، کاملتر، ظاهرتر از مشبهانده و قصده از تشبیه مغلوب و معکوس هم مبالغ است به جای اینکه بگیم زید مثل شیر است در جرعت میگیم شیر مثل زید است در جرعت یعنی زید انقدر جرعتش رفته بالا که ما باید بیایم شیر رو به او تشبیه کنیم و قصد و غرض یه دونه در تشبیه مغلوب بیشتر نیست و اون هم عبارت است از مبادر و تشبیه مغلوب و شاید 5 درصد تشبیهات ما رو تشکیل بده نمود و درصد تشبیه عادی و معمولی است که وحش شبه در مشبهان به اقوا، اشهر، اتم، اکمل، ازهر نسبت به مشبه این مبحث تمام شد اما یه هاشیهی هست در تشبیه مقلوب یه هاشیهی هست در تشبیه مقلوب زیر قاعده زیر قاعده یه هاشیهی هست این هاشیه رو من میخونم خودش هاشیه مهمیه. یه مبحثیه که دقت توش بکنید، بعد انشاءالله تعالی تشبیه دیگه کلن همه چیزش تموم میشه یه دوره هم اون انتها نبشته اون دوره رو براتون میخونن که در واقع این بار درس نیست یک جمع بندی نسبت به بحث تشبیه شما همین شایلله تا شنبه آینده که بخواییم درس جدید مجاز رو بخونیم تشبیه رو به طور کامل نگاه کنید مسلط بشید که تو مجاز دیگه خودتون به بهترین شکلش متوجه بشید و از درس لذت ببرید میگه که یک قرب منها زن نو میگه نزدیک است به این نوع از تشبیه یعنی تشبیه مقلوب نزدیک است به این نوع از تشبیه مقلوب ما ذکر هو علل حلبیو فی کتاب حسن توسل چیزی که ذکر کرده اون رو حلوی در کتاب حسن توسل خودش حلبی یکی از آقایون بلاغیین یک کتابی داره به اسم حسن توسل یه نوعی از تشبیه رو ذکر کرده که این نوع نزدیک به تشبیه مغلوبه خب نزدیک یعنی میاری بهش جز تشبیه مغلوب یک قسم جدا درست نمید اقسام تشبیه همین بود که خوندیم ولی مال آقای حلبی رو هم نقل میکنیم ببینید یقروب من هازن نو مازکر اقل حلبی گو. کتاب حسن توسط و سماه و تشبیه تفضیل اسمشو گذاشته تشبیه تفضیلی تشبیه و تفضیل خب چیه؟ و هو ان به شیء به شیء لفظا او تقدیرا اینکه یه چیزی به یه چیزی تشبیه بشه تشبیه عادی حالا یا لفظا تشبیه بشه آآ لفظا یعنی بگه کل کالعسد فیالجرئر یا تقدیرا تشبیه بشه یعنی بهطور ضمنی خو در سیاق مطلب ما فهمیدیم چیزی به چیزی بگید تشبیه شده یعنی یه تشبیه عادی و معمولی اتفاق افتاده حالا یا واقعا به شکل تشبیه عادی و معمولی دیده میشه یا از سیاق فهمیده میشه درست شد و حوان یوشب به شیء اون بشه این رو تردیدم بعد چی میشه قبیه که شد تشبیه عادی میگه سمه یا عن تشبیه بعد از این تشبیه عدول میشه میگه من این تشبیه رو نمیخوام بعد میگه می زید مثل شیر است در جرعت بعد میگه نه نه نه اشتباه شد ما کهی گفتیم زید مثل شیر نه زید مثل شیر نیست چون شیر روز حیوانات هست شیر عقل و است اینطوری میگه درست شد سنبا یادن و انت میشه از این تشبیه لدعای به این ادعا که برای این ادعا که انت المشبه هفت ظلم المشبه میگه من اشتباه کردم ببخشید زید و تشبیه کردم به شیر زید کجا و شیر کجا کجا و ش درست شده نه؟ یعنی میاد میگه زید مثل شیر است در جرأت بعد میگه عجب چیزی گفتم کی اینطوری گفته زید کجا و شیر کجا یعنی چی؟ یعنی اول تشبیح عادی میاره حالا یادن نفسی ها در سیاق ازش تشبیح عادی پرمیده میشه بعد میگه نه بابا من زید رو تشبیه به شیر کردم زیت قویتر از شیره یعنی باید تشبیه رو معکوس می مغلوب میگفتند اشتباه کردم ببخشید باید تشبیه رو مغلوب و معکوس می بفتن. یعنی در ظاهر تشبیه عادی و معمولی میاره حالا یا به شکل لفظی یا به شکل تقدیری بعد بر برمیگرده ادول میکنه میگه ببخشید من اشتباه کردم باید تشبیه رو به شکل مغلوب و معکوس بیارم مشبه بالاتر از اون مثل این که میگه دانه فلفل سیاه مثال ها ن با دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه هر دو جانسوزند اما این کجا اون کجا الان تشبیه میکنه به اون دانه فلفل رو به خال مهرویان بعد میگه نه بابا اشتباه شد درسته که ما گفتیم این و اون هر دو جانسوزند این سیاه اون سیاه اما این کجا و اون کجا اون خیلی جانسوز از اینه این هم همین شکله یغ رو به زن نه ما ذکر هو ال حویگی و کتاب حسن توسط و سماهو و تشبوی و هو یا شب به هرشه اون بهشه ان زن او تقدیرن صبح و یه آاد از این تشبوی ادول میشه میذاریمش کنار به این ادعا ل دا ان در مشب به ه ظلومه حالا مثال می که مثال زدم برای راحت و ممثلله هو به قول شاعر مثال زده به قول انشااعید میگه حسب تو جمالهو بدرن مزیع میگه زیبایی او را زیبایی یه ماه تابان دیدن خوب او را تشبیه کرده به ماه تابان در زیبایی خب حسب تو تشبیه بلیغ دیگه گفته او را ماه تابانی پنداشتم خب او را تشبیه کرده به ماه تابان ما معمولا هم زیبارویی رو به ماه تشمیل می‌کنه. این تشمیل عادیه حسبت جماله و جمالهو ماهن بدرن مزیاد بعد گفت و عینال بعد رو منزا کرد جمالی ماه کجا و این زیبایی کجا اشتباه کردم. ماه رو باید بیارم به این تشمیل اونو کرد دیگه اول گفت این در زیبایی مثل ماه هست بعد گفت ماه کجا و این کجا؟ من باید ماه رو به این تشبیه کنم، نه این رو به ماه. حسب تو جماله هو بدرن موزی اینجا به طور کامل تشبیه کرده، یعنی تشبیه لفظیه. اون جماله ها مشبه بدرن موزی، آل هم بهه و تشبیه تشبیه بنی، قردار تشبیه و شوهر تشبیه. به شکل عادی اومده که که بیگوشتیم یکی از طرق تشبیه به شکل معتاده خبر که اینجا شده مفعول اول دومه و دومه حسب تو که خونده دونه هاشیه و عین بدروم انزال کرد جمال. و و ها قول المتنبی فی سیف دولته و از همین نوع قول المتنبی در مورد سیف دوله این مثال دومه ولما تلبقا که سحابو به صوب بهی صوب یعنی باران درشت کریم رو تشبیح میکنن به ابر. کریم تو زبان عربی تشبیه میشه به عبر میگن این آدم مثل عبر چطور عبر میبارد و احیا میکنه اینم هم همون میگه لما تلقاک از صحاب موقعی که برخورد کرد با تو ابر ابر با تو برخورد کرد به صحبهی با با قول خودمون باران درشتش یعنی ابر در مقابل تو واقع شد با باران درشتش از این زمنان برمیاد که چی؟ یعنی تو مثل عبری وقتی که عبر رو در رو شد با تو با باران درشتش درست شد تلقاه منهو حکبن و اکرمو برخورد کرد با او چیزی که بالاتر است از او از جهت بلندی و کریمتر است از, از میگه ابر که اومد جلوی تو واقع شد با باران درشتش، خب یعنی از این به طور زمینی در میاد که تو شبیه ابر هستی. ابر که با تو مقایسه شد با باران درشتش، یوها ابر دید که با چیزی برخورد کرده که از او بالاتر است از جهت منزلت. و کریمتر است از جهت جود و کرم از جهت منزلت و ارتفاع و چب اینکه که باش برخورد کرده از اون اب که در مقابل تو واقع شد یه دید که با کسی برخورد کرده که از او خیلی منزلتش بیشتره و از او خیلی بلند مرتبه تر و کریمتر نا این فهمیده میشه دیگه یعنی هم که با تو برکر کرد خب معلوم را تشبیه ها به تو عادی تشبیح میکنن انسان کریم و به هر هم که بالکنار تو واقع شد دید تو کجا و او کجا این هم مثل همون تشبیه تفسیر یا قول این شاعر نگاه کنید من قاسه قاسه یعنی شب به میگه من قاسه که جدوا یعنی کرم من قاسه جدواکه من به صحب اخت احمد میگه خیلی راحت گفته کسی که تشبیح کند جود و کرم تو را در روزی به عبرها کسی که بیاد جود و کرم تو رو بکند به جود و کرم عبر درست شد اخت حک در مدح تو خطا رفته یعنی اگه شاعری بیاد بگه تو مثل عبر بهار هستی اشتباه کرده اخت حک چرا؟ میگه تو کجا و عبر بهار کجا من قاس جدوا که یومن به صحاب اخته قاسه فیل شد جواب شد منم مقتداستی عداد شرط هر کسی که تشبیح کند کرم تو را در روزی به عبر اخته امدهک در مدفع تو خطا کرده چرا؟ میگه چون از صحاب و توعتی و تبکی زیرا عبر عطا میکنه به آدم ابر بارونی میده به با آدم توتی اما و کی گریه میکنه داد میزنه لعد و برقو میگه گریه میکنه اشکش جاری میشه خیس میشه آدم تا یه چیزی به آدم میده میگه خلاصه ابر با غر و لند با بقول خودمون داد و بیداد و با ناله و نفرین یه بارونی به با آدم میده از صحوبو و و تبکی و انت تعطی و تزهک اما تو میای به آدم چیزی عطا میکنی با روی خندان آآ روی باز تو کجا با بگو ابر عب کجا ابر میده اما پدر آدمم میاره انقد داد و بیداد و گریه و زاری میکنه اما تو میدی و میخندی، درست شد خب من قاسه قاسه یقیسه یعنی به تشبیه کرد من قاسه یعنی من شب به جدوا که یومن جدوا یعنی عطا کسی که تشبیه کند عطای تو را در روزی به صحب یعنی هر شاعری که بیاد عطا و کرم تو را تشبیه کنه به بگید ابرها و عطای عبر تشبیه کنه اخت امدحک در مطع تو خطا کرده چرا؟ این جمله دوم دلیلشه چرا؟ چون عبر با آدم چیزی میده اما داد و بیداد میکنه گریه و زاری میکنه آه، اما تو چی؟ و انته توتی و تزهک خب یعنی چی؟ یعنی اگه رو به عبر تشبیه کنه خطا کرده عبر رو باید بیاره به تو تشبیه کنه مش تشبیه؟ تفسیل پس بنابراین تشبیه تفسیلی اینه تشبیه عادی رو میاره بعد میگه باید با من تشبیح اشتباه کردم باید اینو به شکل تشبیه مغلوب میگفتن چرا؟ چون مشبه ما بالاتر است مشبهان بهه اگه من گفتم تو مثل ابری اشتباه کردم باید بگم عبر مثل تو اینوشه تشبیح تفسیر تمام شد یه دونه توی تمارین یعنی الان تمارین این درسو که میخونیم یه دونه تمرین ده هست نوع تمرین ده یعنی آخرین قسم تمرین میگه نگاه اینو همین تمرین دهو میگه ولوله غارل اصد ولولحت و اصد شبه تو هم به ها میگه اگر حقیر بودن و کوچک بودن شیرها است جمع اسده اُسد اصد جمع زده. نونحت قالوا اگر کوچکی شیرها نبود، حیر بودن شیرها نبود، شبهتهم به ها من شماها رو تشبیه به شیر میکردم می‌گفتم شما شیرید. داره به اون رزمندگان میگه. میگه اگر نبود که شیر حقیر از سطح پایین داره، من شما رو تشبیه میکردم به شیر. چرا؟ شیر سطح پایین داره و شما رو بهش تشبیه نمیکنه ولکنه ها معدودتان تلبه می شیر عقل نداره که جرأت پیدا کرده حمله میکنه شما عقل دارید انسانید در کمال فهمیدن خطر وارد جنگ میشید می جنگید. اون حیوان است شما انسانید عاقلید پس شیر سطحش فایی از شماست میگه لوله تقالالعوس شبه تو هم به های یعنی چی؟ یعنی اگر شیر اغیر نبود منم مثل مردم شما رو تشبیه به شیر میکردم یعنی تشبیه عادی میگفتم میگه من چرا تشبیه عادی نمیگم چرا نمیگم انتوم کل اصد فل میگه چرا این رو نمیگم به دلیل اینکه شیر نمیتونه مشبهان به شما بشه چون شیر حیوان سطح پایین تر از انسانه پایین تر از شماست هست خب این تمام شد حالا اگر این آدم میخواست این طر بگه مبالغه کنه اینطور اگر گفته بود لولاحت قارل است شبه تو ها بهم شبه تو ها بهم به تشبیه چی میشد شد صد برابر میشد چون ترجمهش این میشد نگاه کنید اگر شیر سطحش پایین نبود شیرها رو می آوردم به شما تشبیه میکردم تو اون صورت اول میگه شیر سطحش پایینه من شما رو به شیر تشبیه نمی‌کنم یعنی راضی به تشبیه عادی نیستم اگر برعکس گفته بود یعنی شیر خیلی سطحش پایینه من شیر رو نمیارم به شما تشبیه کنم شیر اصلا لیاقت تشبیه شدن به شما رو نداره چون حیوان مبالغش چند برابر یعنی در صورتی که الان شعر رو میخونیم لوله تقارل اوز شبه تو هم ها ازش یه فهمیده میشه من راضی به تشبیه ها عادی نیستم که اینها ها رو تشبیه به شیر کنم ولی اگر بگه شبه تو ها جاشون عوض کنه یعنی من راضی به تشبیه مغلوب و معکوس نیستم که شیر رو بیارم به اینا تشبیه کنم شیر لیاقت مشبه شدن برای اینها را ندارد در صورت اصلی که الانه میشه شیر لیاقت مشبه به شدن را ندارد در این صورت که جا به بشه این میشه که شیر لیاقت مشبه شدن را هم ندارد مبالغش خیلی بیشتر میشه حالا نگاه کن میگه تکلم علا مافل بیت که من صحبت کردم مافل بیت صادق منظورو بن بیانی از انبای حسن بیان نگاه کن که وقتی اینطوری گفته یعنی من راضی به تشبیه دینی نیستم میگه هل ترا انلمد ها یکون ابلغا لو قال شبهتها بهم آیا فکر میکنی تشبیه بلیغ میشه خیلی مبالغه آمیز میشه اگر بگه شبهتها بهم بله مبالغه آمیزانه و لمازا یکونت تشبیحو ازن اگر اینطور بگه تشبیه چطور میشه بگه شبهتوها توها به هم شبه توها ها میشه مشبه هم میشه مشبه هم به یعنی تشبیه میشه مغلوب الان که گفته شبه تو هم به ها چیه؟ هم مشبه ها مشبهان به تشبیه عادی الان میگه من راضی به تشبیه عادی نیستم، چون شیر حیوانه اگر برعکسش کنیم میگه من راضی به تشبیه مغلوب نیستم که برای مبالغه است یعنی اون حتی لیاقت مشبه شدن را هم ندارد خب بیایم سر این مبحث. اینجا اصلا دیگه بحث تشبیه بقول خودمون تموم شد بحث تشبیه تموم شد و ما داریم یه بقول خودمون دورهای میکنیم یه دوسته نکته بگیم نکاتش هم من توی درس از اون روز اول تا الان تکرار کردم من مطلب جدید ندارم میگه بلاغت و تشبیه زیبایی تشبیه رو میخواد برا ما بیان کنه بلاغت و تشبیه و بعض ما اوسرا منهو عثر یعنی رویه اصلا معصور یعنی مروی روایت شده نقل شده بعض یعنی پاره بلاغت تشبیه و بلاغت پاره از آن چه که روایت شده از تشبیل از کی روایت شده است این موارد انل العرب و المهدسین. از عرب و محدثین. عرب عرب رو تقسیم میکنن به چهار دسته عرب رو به چهار دسته تقسیم میکنن یکی عرب جاهلیین، که شما ادب جاهلی میخوندید که قبل از اسلام بودن دوم مخزرمین مخضرمین با زاد مخذرمین اونا یعنی که هم جاهلیت رو درک کردن هم اسلام رو آه؟ هر دو رو یعنی کسانی که یه مقدار از عمرشون در جاهلیت گذشته یه مقدارش در اسلام و بعدش متقدمین متقدمین اونا یعنی که بعد از مخذرمین اومدن یعنی اون نسلی که هم جاهلیت رو دیدن هم اسلام رو دیدند اونها از دنیا رفتند حالا متقدمین آمدن یعنی اونایی که بعد از مخضرمین اینها تا قرن آخر قرن دوم <تصفيق> یعنی سال دویست، تا آخر قرن دوم میشن متقدمین <تصفيق> اما از مثلا آخر قرن دوم یعنی بهشون میگن خلفای عرب یعنی حالا دیگه نهایت تا سال 250 از اون به بعد از اون به بعد دیگه میشن متأخرین این متأخرین رو تا الان و بعد از این متأخرین میگن مهدسین میگن مولدین هم میگن پس میگه ما مثالهایی برای شما خواهیم آورد از عرب یعنی از جاهلیین مخزرمین متقدمین و از مهدثین یعنی متأخرین و از مولدین حالا تو زبان عربی برای اثبات صرف و نحو برای اثبات لغت برای اثبات قواعد گرامر اون عرب قولش حجته عرب شد شجته یعنی ما الان شما نگاه کنید تو کتاب های برای مثلا اثبات قاعده اشاره به شعر امروغیس میکنیم اشاره به آیه قرآن میکنیم آه؟ اشاره به شعر مثلا فرض بفرمایید که فرزدق و جریر میکنیم یعنی شعرهایی که جز جاهلیین مخذرمین متقدمینند. اما دیگه مثلا به متنبینه میاییم که نه چهارم بیایم استناد بکنیم برای اثبات قاعده اون میشه جزء متأخرین مختص ولی برای زیبایی می‌خوایم ثابت بکنیم یه شعر زیبایی شعر یه شعر قشنگو قشنگ ممکنه یه نفر الان هم گفته باشه قشنگ مشو جزو مختص برای بلاغت اظهار زیبایی اشکالی نداره که ما شعر را از گذشتگان بیاریم و حتی از متأخرین هم بیاریم پس تو اینجا ما زیبایی تصویر رو می‌خونیم و زیبایی پاره ای از چیزهایی که به ما روایت شده و رسیده از عرب جاهلی و مخزرمی و متقدمین و بگید از محدثین این مبحثی بود که بیان شد المحتس و فلغه المحتس یعنی چی؟ یعنی المتحصر یعنی المولد و والمراد به من جا بعد اهل العرب منظور کسانی یعنی هم که بعد از دوران الا عرب اومدن الا عرب گفتیم کیان جاهلیین مخزرمین متقدم میگه عرب منظور الذین یحتج به کلام فی اللغه اونهایی که احتجاج میشه استدلال میشه به سخن اونها در لغت یعنی در صرف و, نه و اثبات لغت و معنای لغت اونها حجت ولی در بلاغت و زیبایی فرقی نمیکنه. امرال چرا شعر زیبا گفته الان هم یه شاعر جدید شعر زیبا بگه اشکال نداره اون استاره به کار برده هم خب تا اینجا مطلب رو دانستی نگاه کنید این چیزی که الان میخوایم بخونیم این که الان میخوام بخونم ما اومدیم تشبیه رو توی یکی از درسهامون تقسیم کردیم به مرسل و مؤکد مفصل و مجمل ما هست یعنی یا اداه تشبیه هست میشه مرسل یا نیست مؤکد یا واچ شبه هست مفصل یا نیست حذف شده نش میگیم مجمل بعد گفتیم که اگر هم عداد تشبیه نباشه هم وچه شبه هر دو نباشه به این میگن تشبیه بلیغ و گفتیم چرا بهش میگن بلیغ نه اینکه یعنی خیلی شیواست بلاغتش زیاده تشبیه بلیغ یعنی مبالقش زیاده چون عدات تشبیه که حض شده وشبه هم هست شده تشبیه تحکیلش قدرتش بیشتر شده یا باشه باشه ضعیف ضعیفترین تشبیه اونیه که هم عداتش زک شده هم وشبه قوی ترینشون که هر دو خاص شده تشبیه بلیغ بعد گفتم اونی که یکیش هست شده یکیش هست متوسطه که گفتم متوسطان متوسطان درست شد بعد بود کدوم یکی از اینا تشبیهات همه بهتره گفتم هیچکدوم کدوم بهتر از اون اینا مثل میمونه داره 500 داره یک میلیون 200 داره کدومش خوبه خب بعد برای کی میخوای اگه بچه است باید 250 براش استفاده هر کدوم جای خودش اگه میخوای توضیح بدی از تشبیه استفاده کن که عداد تشبیه و برد هر دو هست اگه میخوای مبالغه کنی داری غزل میگی مد میگی میخوای مبالغه کنی از تشبیه بلیغ استفاده کن هر کدوم جا, به جا استفاده کنی اصلا از بلاقت به دوره اصلا غلط گفته شده درست پس بنابراین اینجا این شخصی که داریم از متن کتاب میخونیم یک اشتباهی توی عبارت صاحب کتاب با اون که به اول خودمون کتاب درسیه کشور مصره اینجا یه اشتباهی اینها درش مرتکب شدن نگاه میگه تنشا و بلاغت و تشبیه منظور از بلاغت تشبیه مشکن این اینجا رو نمیگم ها اینجا بلاغت جای خودشه زیبایی میگه تنشا و بلاغت و تشبیح من انلهو ینتقل رو بکرد زیبایی تشبیه از کجا به دست میاد از اینکه که تو رو از یه مشبهی که میشناسی منتقل میکنه به یه مشبهان ای که کمتر به ذهن کسی میرسه توش قوه خیال هست توش زیبایی هست یادتونه اون سوهیل رو ستاره سهیل رو ابوالعلا مری تشبیه کرد گس سهیلون که وجنت له به فلون و قلب المحب به فل خفقانی گس ستاره سوهل که میل و رنگ سرخابی داره مثل گونه محبوبه ماست در رنگش و مثل قلب من عاشق است در تپش و لرزشش خب ببین این که ستاره سهیل به گونه محبوبه در رنگ تشبیه به قلب عاشق در لرزش و استراب تشبیح بشه این به ذهن هر کسی نمیرسه این زیبایی تشبیح میگه تنشه و بلاغت و تشبیح من انهو ینتقلو بکن منش شیع نفسهی از یه چیز مثل ستاره سوهر الا شیعن تریفه به یک شیع نایاب تو رو از منتقل میکنه از ستار سوهر به یه شیع نایاب گونه محبوبه قلب عاشق که یوش به حکوم این مال تشبیح عادی مانه تشبیه مفرد از یش به یش یا نه یا نه تشبیه تمثیلی او صورت تو تمثلو یا میاد از یک صورتی شما رو میبره به یه صورت دیگه تو تشبیه تمثیلی شد یا نه مثال میزد مثل اللذین هم لدورات ثم لم يحملوها که مثل از یه سکانس شما رو میبره به یه سکانس حالا اگه تشبیه مفرد باشه از یه مشبه شما رو به یه مشبه همون به تریف زیبا میبره نایاب میبره یا از یک صورت به یه صورت دیگه میبره تو تشبیه تمثیلی که همشکل از همشکل وز. و کلما و کلما کانه زل انتقال و بعیدن قلیل خطورت بلبان هر چقدر فاصله بین مشبه همون به دور باشه کمتر به ذهن کسی برسه بلبال یعنی بال یعنی ذهن کمتر خطور کنه به ذهن اون ممتاز جن به قلیل ان اون کسی من الخیال یا مخلوط باشه به کم و زیادی از قوه خیال مشخص شده نه؟ قوه خیال مثل اون سوهل که قوه خیال توش مدخلیت داره اومده ستاره سوهل و تشمیب قلب و عاشق و گونه محبوبه کرده خلاصه توش قوه خیال مدخلیت داره کم یا زیاد و کمتر میشه بزن ولی مثلا بیاد تشبیه بکنه مثلا کره زمین مثل توپ میمونه خب این همه میگن اینا رو بهش میگن تشبیهات مبتزل پیش پافت. کسی اگر بیاد بگه مثلا کره زمین مثل توپ میمونه کسی برایش چپ نمیزنه میگه چقدر تشبیه عجیب و غریب ولی برای آقای ابوالعلا که سهرل رو تشویق کرده بود چفت میزنم میگه این می چه قشنگ تشویق کرد چی به ذهنش میرسید این چی به ذهنش میرسید یعنی همین کان هازل انتقال و بعیدن قلیل خطورت بلبال. او ممتاز جنب قلیل و کثیر من الخیال خیال دوشمذخریت میگه اگر هر چقدر اینطور باشه کان تشویقو و ال نفس و یعنی اجمل این تشویق برای نفس شنونده زیباتره و ادعا و برنگیزاننده تر است اعجاب اعجابها و احتزازها و برنگیزاننده تر است به این که اعجاب او رو شیفته کنه او رو و اونو و اون رو بکنه از جا وقتی اینو میبینه از جا کنده شه تکونش بده اهدزه یعنی تکون خورد. اعجاب یعنی شیفته شده هرچقدر این تشبیه به قول خودمون این شکلی باشه روح شنونده رو بیشتر تکون میده. آ بیشتر او رو شیفته میکنه. تاثیرش بیشتره. حالا نگاه کنید مثال میزنم. فرزا قلت، فرزا قلت، فرزا قلت. پس اگر تو گفتی فلانون یوشبه و فلانن فتور. یه نفر دیدی؟ گفتی ای زید مثل داداش شماست که قدش قد داداش زید مثل قد داداش تو؟ اون که آه می چه تشمیهی گفتی درست شد نه؟ چه این نمیگه این تشمیه تشمیه خارغلاده نیست تشمیه بله فلانون مشبه یوشبه عدات تشبیه فلانن مشبه هم به فغ طول باشه ما کسی که این تشبیه کسی نیستش که بیاد تو کتابها و نقل کنن و فلان. یا بیاد یکی بیارین سر کلاس تو درس جغرافی بگه ان توش تشبه الکرته به شکل. بگه این کره زمین مثل یه توپ میمونه در شکلش. زمین گرده مثل یه توپ. اونجا او چی گفت؟ اصلا این نیست. یا بیاد نقشه کره زمین که نقشه داره بچلخونه انگلستان رو ببینه آن بریتانیا رو ببینه بعد نقشه بریتانیا رو نگاه کنه بعد بچلخونه اون طرف هم اون برای کره زمین ژاپن رو هم ببینه هر دوشون مجموع جزایه رو ببینه بعد ببینه این دوتا شبیه هم آن Hass maxim شکلشون می سهم بعد بگه اینل جزور البریتانی یه التوش گفه اليابان بگی ای نگاه کن کشور بریتانیا مثل کشور ژاپن میمونه یابان این مثاله مجموع الجزایر بریتانیا مثل مجموع الجزایر ژاپنه یا مثلا نقشه ایران رو نگاه کنه بگم ای این مثل گربه میمونه که نشسته اینطوره بگیان ای چا ایتالیا رو نگاه کنه میگه ای مثل چکمه میمونه مثل چکمه میمونه نقشه خب ای اینا رو که چاپ نمیزنه این تشبیهات رو اینا رو تو کوچه و خیابون همه دارن از صبح تا شب به کار میبرن. اینا چه مشکلی داره این تشبیه؟ اینا تشبیلات خوبیه برای توضیح دادن، برای مثال زدن، برای محاوره اینا خوبه اما اینا از جنبه ادبی توهین. چرا؟ چون منتقل شدن از مشبه به مشبه به زور و زحمت نمیخواه از نوع قلیل و خطور و بلبال کمتر به ذهن کسی برسه نیست بعضا توش خیالی در کار نیست چه کم چه زیادی چی توش نیست میگه لر یکن لحاظه تشبیحات اثرون للبلاغه این تشبیحات اثر بلاغی نیستن چرا لظهور المشابهته تو مشابهتش مشغل که نگام کنه خوب میفهمه دیگه همه میبینن و عدم احتیاج و عدم احتیاج لعصور علیه های و جهد نده اصور اثر علا با سیس نقطه یعنی اطلاع پیدا کرد و احتیاجی نداره مطلع شدن بر این مشابهت به یک براعت مهارت و یک تلاش ادبی نه با با یه دونه آدم عادی و بی سوادم تو خیابون که را میره از این حرفو میزد این نیاز به براعت مهارت و نیاز به تلاش ادبی نداره و لخنوف و هامنر خیال توش قدرت فیال نیست که نقشه ایتالیا رو دیده با نوس چک کره زمین رو دیده که نیمه مثل توپ میمونه. خب یه, میمون. یه چیزی نداره. میگه ببین علی این تشبیهات اصلا نگییم. اینا رو بذاریم دور میگه نه اینا رو میگیم. اما اینا رو توی موहाوره ها توی نمیدونم برای توضیح دادن توی درس و کلاس و اسلوب علمی که بایدتون گفتیم تو اون اسلوب به کار میره اما تو اسلوب ادبی به کار میگه و حاض از ضد ملت تشبی یخزد و به البیان و و افسااح و ایزا این نوع از تشبیه باهاش قصد میشه بیان و ایزا درست شد قصد با اون ال البیان و ولی ایزا و و و ها و تقریق وشهیل اللفخوا میخوایم یه چیزی رو به ذهن نزدیک کنیم که این کره زمین گرده میگیم مثلوب مییم و عکسثر رو مای وسه عمل فل علوم و بیشتر این جایی که استفاده میشه تو و فنونه یعنی تو عوب اتبی چی اصوب علمی اونجا به کار میره. اما نگاه کنید الان سه تا شعر مثال میزنه. خب؟ این سه تا شعری که مثال میزنه، اینا اسلوب ادبیه. تشبیه اینا قیمتیه. از عرب و محدثین هم مثال میزنه. چی شده که اینها از اینا مشبه مشبهان به و شبه تشبیه دارن؟ اینا چرا قیمتی شدن؟ اون تشبیهاتی که الان خوندیم نیستن؟ میگه به خاطر اینکه این کمتر این به ذهن هر کسی میرسه عدیب فقط میتونه از این چیزا به ذهنش خطور کنه چون مشابه با مشابهون به خیلی فاصله داره دوم اینکه مخلوطی از قوه خیال باشه توش یه مقدار قوه خیال دخیل حالا که هم یا الان نگاه کنید میگه ولا که نک و که ولی زیبایی روعه یعنی زیبای زیبایی تشویر تو رو میگیره میره اما تصمه و قول مردی موقعی که شما میشنوید قول آقای ابوالعلای علای رو یسف و نجمن که داشته توصیف میکرده ستاره اینجا میبینید این یه چیزی گفته که کمتر به ذهن کسی میرسه توش قوه خیال دخلیده ستارهی که قرمز رنگه ها. و و و بعضی ستاره ها رو دیدید که هم قرمز رنگی، هم تکون, تکون می‌خوره، هم چشمک می‌زنن. انگار داره احساس می‌کنه خاموش روشن بشه. به خاطر این فاصله ای که بین ما هست و توده هوایی گرد میشه و نوع خاکی که اون ستاره داره بود، نوری که بهش تابیده میشه فاصله ای که بین ماست، این اتفاقات برای ستاره می‌افته نسبت به اینکه ما می‌بینیمش. این آقای ابوالمعالوی معزی با اون که نابیناست این ستاره طلز داره تشبیه می‌کنه. ع چهار سالگی نابینا شده اما ببینید چقدر تشویش داره میاد این ستاره رو که رنگ قرمز داره و تکون تکون میخوره سرخ است تکون تکون میخوره و هی هم چشمک زد میزنه خب او اومده تشویش کرد میگه چی تشبیه کرده به چشم یک انسانی که خارش شده خون جلوی چششو گرفته دیدید بعضیا چشمشو خارش می کنه چشمش داره از حلقه میزنه ببینید دنی چشش می‌لرزه. بعد عصبی این چشمه می‌لرزه. مدام اون که چشم داره می‌لرزه. بعدم هی چون تیکه عصبی داره، هی پلک میزنه هی, پلک می هی پلک می اینجا نمیخواد چشمک زدن اون رو تشبیه به این کنه، اینو به اون تشبیه کنه ولی میگه اگر یه سکانسی شما از این ستاره داشته باشید که لنگ سرفی دارد و نرزش دارد و داره چشمک چشمک چشمک تند تند تن این سکانس رو ببینید بعد بیاید نگاه کنید این ستاره رو دیدید بیاید نگاه کنید یا آدمی که فشمگین شده خونش به جوش اومده چشاش خون داره میزنه ازش بیرون چشام میلزه و هی هم داره پرک میزنه این دوتا رو به هم تشبیح کن یه این دوتا چی میتونست بیاد اون ستاره رو با اون خصوصیات به این بگید انسان غذبناکی که داره چشمک بیزنه تشبیه کنه این کارم عدیبه قوه خیال اینجا آمده میگه یوسرو او یعنی یوسرو اون ستاره شتاب میکنه اون ستاره انلمه چشمک زدنش رو فهم رارن در سرخی که داره این حیعت مشبه کما توسرو او به لمه همانطور که شتاب می کند در چشمک زدن مقلت الغذبان مقلط یعنی, یعنی حدقه حدقه چشم الغذبان یعنی انسان خرش اون حیعت و به این حیعت تشبیه کرده یک صورت به یک صورت دیگه خب این چمتر به ذهن کسی می رسه توسر و فهمرارن کما توسر و یسر و لمح فهمرارن یسر بخوره به نجم یسر و, و, و لمح فهمراریم کما توسر و فلمح مقلط غزبانیم لمح البرد و نجم لمح هم هم درخشششون این چشمک زدنشون و لمح البرد و لمح البرد نظر یعنی یه نظر نگاه کردن برگشتن اون حالت چشمک دیگه یسر یاست و لمحفهمراررن که ما رو في حالا این شیر با اونجا زمین مثل یه توپ میگوونه خیلی فره. این اومده یه چیزی رو که ستاره است که چشمک میزند و رنگ سرخابی دارد و در استرابه تکون تکون میخوره این مجموعه رو اومده تشمویر کرده به چشم یک انسانی که خشم کرده قذب کرده چشم قون تله چششون گرفته، چشمش داره بر تیک عصبی لرزش میکنه و هی هم چشمک میزنه. یه مجموعه به یه مجموعه نگه فعی این نجم تشبیه چشمک زدن های ستاره و تعلقی و درخششش مع احمرار زوئهی با سرخی رنگش بیاد تشبیه کنه به سرعت نمحت الغذبان به سرعت چشمک زدن تلک زدن یک آدم غذبناک این که این فهنه تشبیح لمحات نجم منت تشبیحات نادرت لدی لا تنقاد از تشبیحات نادری است که لا تنقاد و الا لحدیبه رام نمیشه مگر برحدیب حدیب میتونه از این چیزا بکنه اشکی دیگه نمید. درست شد؟ و منزال که قول و شاید خب این آیه عبول علای مردی قرن چار و منزال که قول و حالا این شعر رو نگاه کنید این هم باز تشبیه با قول خودمون تمثیلیه و نوعش هم نوع مقلوبه مقلوب تمثیلیه که برای مبالغه گفته میگه نگاه کنید گوش کنید اینجا قوه خیال هم مدخلیت بالایی دارد که بوش کنید شما آسمان رو نگاه میکنید آسمان تو شب اگه با آسمان تو شب نگاه کنید چی میبینید یه صفحه که سیاه بعد توی این صفحه چی میبینید ستاره هایی که فراوان روی این صفحه سیاه درخشان دارن میدرخشان. یه یعنی عکسی از آسمان در شب بندازید یه یعنی عکسی از آسمان در شب اندازه. این عکسی که در آسمان در... از آسمان در شب انداختی چجوریه؟ یک صفحه سیاه پر است از ستاره های سفید یه تعدادی ستاره سفید توش یعنی خیعت بعد بیاید به جامعه نگاه کنید جامعه که ما توشیم یک جامعه باشه جامعه اسلامی باشه جامعه خوبی باشه جامعه انسانی باشه اما این جامعه ای که انسانی اسلامیه خب چند تان توش بدعت هست یه سری بدعت دارن بدعت یعنی امر ناهنجار همه این جامعه انسانی اسلامی هنجاره یه چند تا ناهنجاری توش یه تعدادی ناهنجاری توشه میگه مثل جامعه ای که همش هنجاره انسانیه حقوق بشر توش رعایت میشه حقوق انسان حقوق اقلیت ها اکثریت ها زنان مردان همه توش رعایت میشه اول چند تون توش بدعت هست چند تون توش چیز بد هست خب مثلا فرض بفرمای که این جامعه توش مثلا فرض بفرماییی که وقت باطل گذرندن زیاد توش مثلا احترام بزرگ رو نگرفتن توش زیاد مثلا هست چه چنطی بعد تصور کنید جامعه سفید جامعه ای که خوبه جامعه سفید یعنی مثلا گند بزنین که میگه سفید بخته یا سیاه بخته بخت که سفید و سیاهن بخت یعنی شانس برای شانس رو اومده رنگش داده سفید این تصور خیاله جامعه ای که خوبه مثل جامعه سفیده بعد اون بدعت ها نقطه های سیان مختهایه بگید سیاه هم بعد سیاهه سیاهه. این جامعه ای که کاملا سفیده مثل پیرنی که من پوچیدم سفید سفیده دو تا سه تا چهار تا لکه جوهر سیاه رو الان میگه آسمان سیاه با این ستاره های سفیدش مثل جامعه اسلامی جامعه انسانی سفیدیه که چندتا بدعت سیاه دوشه ببین اینجا نمیخواد جز به جز تشبیه کنه یعنی آسمان رو بیاد تشبیه کنه به جامعه اسلامی و دینی و جامعه انسانی خوه آسمان سیاسی سفیده سی سفیده خیال نمیخواد ستارها رو تشبیه به بدعت کنه که بگه ستاره ها و ها سفیدن بدعت تصور رنگ سیاه براشون کرد مجموعه مثل مجموعه مجموعه چیه زمینه یه رنگ؟ چند تا نقطه متضاد با اون در این زمینه هست مثلی که شما نگاه کن یه نفر یه روسری سر کنه یا یه لباسی بکشه پیرهنی بکشه این پیرهنش سیاه باشه ولی روش ستارهای سفید روش نقاشی شده ستارهای سفید توش نقش بسته یکی دیگه اومده همون لباس و پیرهن رو پوشیده یا همون روسری سر کرده روستریه سفیده، ستاره هاش سیاهه هرکی نگاه کنید که این دوتا دو مثل همه خب این دوتا مثل هم منظور این که سیاه مثل سفیده این نیست. بلکه منظورش این نه که این حیعتش مثل این حیعت اینم هم همینه نگاه کنید بعد ما باید جامعه دینی رو که توش بدعته که امر معنویه تشبیهش بکنیم به آسمان و هاش که حسیه ولی اینجا آمده آسمان و هاش رو تشبیه کرده به جامعه دینی که توش بدهد نزا تشبیه تمثیلی مقلوبه میگه وکعنن نجوم بین دوجاها جاها دو جا دو یعنی تاریکی ستاره ها در بین تاریکی ها این حیعت مشبه مثل چی میمونه؟ سننانی مثل سنت هاییست سنت هاییست که لاه همه اینه نه سنت که ظاهر شده سنت که ظاهر شده در بین اون سنت ها یه چند تا برد درست شد یه چند تا بدعت توش هست مثل جامعه ایست که سفید سنته چند تا بدعت لاحه یعنی زهره و ابتدا یه تشبیه تمثیلیه حیعت به هیئت نوع مغلوبم هست یعنی محسوس اومده به معقول تشبیه شده و این تشبیه تشبیه قشنگیه چرا؟ چون برای سنت جامعه ای که توش اخلاق خوب هست برای اون اخلاق رنگ سفید چیز شده و برای بدعتهایی که هست رنگ سیاه تعبیه شده اینو قوه خیال درست کرده نگاه کنید مگه فعیل نجمال حاضد جا امن شعوره که به براعت شایر جمال این تشبیه از اونجا به دست اومده که شما مطلع شدید شاعر ماهر است و حضقهی و خیلی حاضق است. خیلی خبره هستش بی عقد المشابهته در این که اومده مشابهت ایجاد کرده بین این بین دو حالت ما کان رو و تشابه تشابهه بین دو حالتی که خطور نمیکرده به ذهن انسان تشابه این دو تا آدم عادی نمیتونسه این تشابه رو انجام بده این دوتا کدوم کدومن هم؟ هما حالت و نجوم بیرقعهت لیل حالت ستارگان در صفحه سیاه شب به حال اینجا اشتباه نوشته اینجا اشتباه نوشته آه؟ فکر کرده اومده این آسمان رو که سیاه هست و ستارهای سفید داره تشبیل کرده به جامعه ای که کفرامیزه و چند تا سنت خودتشونه مثلا یه جامعه ای هست جامعه پست و کفرامیزیه تو تا صفت خوب دارن مثلا فرض کنی دروغ نمیگه خیانت نمیکنه نه این نیست بلکه به جامعه دینی ببین میگه سنن لا هبینهن ابتدا سنت ها هستند بی‌نهایت خوب چند تا بدعتن لا هنه اون نمیخوره به سنت سنن یه جامعه دینی که چند تا به قول خودمون بدعت هم هست خب این زمینه سفیده سنت ها سفیدند و بدعت ها سیاه میگه به حال از سنن دینیت صحیحت متفرقتن بین البدع الباطله حالا شما باید بدع باطله رو بیارید جای سنت دینی صحیحه یعنی بگید به حال البدع الباطلته متفرقتن بین از سنن دینیت سهیه اون اومده تشبیه کرده به چی؟ بگید به حال البدع الباطلت خب متفرقتن بین از سنن دینیت سهیه چند تا بدعت باطل که در یک سنن دینی صحیح یک جامعه دینی صحیح پخش شد اینه جامعه جامعه دینی صحیحیه که چند تا بدعه توش افتاده درست شد؟ میگه وله تشبیه تشبیر رو اتون اخرا میگه این تشبیه جمال دیگری هم داره جاءت من انش شاعر تخیل انش سننه موزی اتون لماه شاعر تخیل کرده که جامعه دینی جامعه که توش سنت رواج داره این درخشان است و سفید و امنال بدعه و این که هایی که تو این جامعه افتاده اینها همه مظلمتون قاتمه تاریک هستند و سیاه مظلمه و قاتمه به یک مناسه تاریک سیاه و رنگ داده سنتو کرده سفید بدعه و کرده سیاه این خیال این کاری کرده البته گفتیم که این یک زیبایی دیگری هم داره که اشون نبافته تشبیه مغلوبه. معکوس این تشبیه مغلوب و معکوس اینجا زیبایی دوچندانی داده به این مطلب حالا بریم سر تشبیه سوم که خیلی زیباست و من دهی تشبیهات قول متنبی از زیباترین تشبیهات قول آقای متنبی سینو خوب گوش کنید ببینید شما تو شعرای جاهلی هم دیدید که شعرا چه می می‌گفتن ما میریم سر اطلال اطلال یعنی آثار باقی مانده از معشوقه معشوقه کوچ کرده با قومش رفته ما میریم سر اون اطلال معشوق رو پیدا نمیکنیم و شروع میکنیم به ناله و, نف... و نفرین به خودمون و به قول خودمون عشق و آه که چرا معشوق ما در اینجا نیست رفانت که منذک راهبی بن و, و منزدی به سبت بین بیند دقول فحاملی شعر مرهده است و بقیه شعرها که با اطلال شد خب. حالا آقای متنبی اینجا یه کاری کرده درست شد میگه که من هم رفتم در اطلال محبوبه خودم محبوبه رو ندیدم پیدا نکردم اونجا ناله و آه و اندوه از من بلند شد گریه و زاری کرد بعد سوال اینجاست یک آشقی که در اطلال معشوق داخل میشه و شروع به ناله و آه میکنه درست شد این نوع ناله و آهش چجوریه یعنی مثل اینکه مثلا یه کسی رفته موزه داره نگاه میکنه نگاه میکنه ای, ای اینو ببین چند سال پیشه اینجاش چطوره, چطوره؟ اینطوری نگاه میکنه یا مثل کسی که توی خیابونی مثل توی خیابونی داره راه میره به دو نگاه میکنه چجوریه؟ یعنی دیدن او اطلال رو این آشد اطلال رو نگاه میکنه چجوری نگاه میکنه؟ ناله و گریه میکنه چجوری ناله و گریه میکنه؟ درست گوش کنید ببینید چه رفتش هایی میگه بلیتو تو, بلی تو جمله دعاییه یعنی بپوسم مثل اینکه میگیم رحم الله خدا رحمتش کنه. بلیتو تو بلال اطلال این بلل اطلال مفعولون مطلقه نوعی بپوسم من مثل پوسیدن این اطلال من هم کهنه و نابود شم مثل این اطلال مثل کهنگی این اطلال املم اقف به ها اگر نایستم در این اطلال اگر نایستم در این اطلال املم اقف به ها خب میگه من اگر نیام تو این اطلال و این اطلال من رو نبینم منم مثل این اطلال نابود شم بپوسم اما چجوری من والد این اطلال میشم؟ وقوف شهیهن، شهیه یعنی بخیل مثل ایستادن یک بخیل زا افت تربه خاتمه زا تربه خاتمه که گم شده است. در خاک در خاک اونجا خاتمه در جنگشتر گرون بیمتش نوع تشبیه یادتون باشه تشبیه بلیغه که از نوع مفهول و مطلق نوعیه تشبیهش تشبیه حیعت به حیعته میگه من که میرم تو اطلال دنبال معشوق خودم میگردم تو اون خرابه ها و پیدا نمی کنم آه و این توی اطلال میچرخم چرخیدن من تو اونجا مثل چیه؟ مثل اینه که یک آدم بخیلی رفته توی خرابه ای خب داشته راه می دفته. یه انگشتری تو انگشتش بوده خیلی گون اون قیمن افتاده گم شده خوبه چیکار میکنه ؟ انگشتر کنه افتاده از دستش و گم شده حالا یه نفر آدم به خودمون بخیل نباشه یا آدم چوده باشه اون نگاه می نگاهی میکنه کنه این و نیست دیگه می درست شد اما اگر اما اگر این آدم بخیل باشه آب از دستش نچکه بعد هم انگشتر گران قیمتی رو گم کرده باشه چیشی میکنه خاکا رو میریزه بالا میزنه تو سر خودش گریه میکنه میکشنش میگن بابا کشتی خودتو ول کن دیگه جهنم که گم شده میکشنش دوباره میدوه میاد میچرخه تو این خاکا خاکا رو پس و پیش میکنه تا پیدا نکنه که نمیره تو سر خودش میزنه گریه میکنه داد میزنه هی میبرنش دوباره برمیگرده میاد تو کله خودش میزنه خاگا رو میریزه تو سر خودش توی انگشتای گریم قرمز میگه منم همینطور خودش خودشو تو این جا داره نشون میده که منم وقتی وارد این اطلال میشم میبینم اینجا محبوب من بوده الان نیست اونجا آش میپختن اونجا داشتن غذا میپختن اونجا شدتر آشون رو بسته بودن اینجا اینطور بود اونجا شروع میکنم به گریه داد میزنم دوستان من منه میکشن بابا خودتو کشتی ول کن منه میبرن دوباره میدو هم میام خاکار میرزن سرا همه اینو فهمید حیعت به ات میگه بلی تو بلال ها. وقوف و شهیه واقع شدن و ایستادن یک بخیری که زاعه این جمله صفت بخیری بخیری که زاعف تربه خاتمه در خاک اونجا زاعف تربه خاتمه گم شده است در خاک اونجا خاتمه اون. انگشترش گم شده خاتمه خایل زاعه میگه ید اولا نفسی من گفتم دیگه به خودش داره نفریم میکنه که من بفوسم و نفسیهی بل بلا ول فنا داره میگه من بپوسم و نابود بشم ازاغو ولم یقف بل اطلال هنگامی که اون نیستد در اطلال لیت کره اهد من کانو به ها اگر او نیستد در اطلال و یاد و نیاورد دوره کسانی رو که تو اینجا بوده سن معرادن یوسف بره لکه هی بعد میخواد هیئت وقوف خودش رو برای شما توضیح بده. سام مهرادان یوسف ولله که هیئت وقوفه. بعد میخواد هیئت وقوف خودش رو برای شما توضیح بده که من چه جوری میستم. فقانه کمای یقه فشیی مثل اینکه یک بخیلی میسته فقد خاتم اخو فتورام و گم کرده خاتم خودشو در تراب. در خاک. هم گشترش. من کانه موفق اله تصویر قال ظاهر المتحیر کی میتونه توفیق پیدا کنه حال یک عاشقی رو که از خود بیخود شده زاهل متهیر گیجه محزون غمگینه المطرقه به رأسی سرشو به این ور ور بر میزنه المنتقل من مکان الی مکان از این طرف به اون طرف میدوئه فاسترابن و دهشته در استرس و استراب خب یه همچین هیئتی رو که خودش داره تشبیح کنه کی میتونست موفق بشه اینو رو کنه به حال شهیه به حال یه آدم بخیل کنست فقط افتراب خاطمان خاتم ها که در خاک گم کرده در قرابه انگشتر گرون قیمتش ببین چه چقدر زیباست این تشبیح یعنی آدم وقتی میخونه میفهمه یا انگاه براش این تصویر این صورت این سکانسی که او توی اون اطلال وارد شده و داره تو سر کلمه خودش میزنه کامل میتونه این سکانس رو تصور کنه این کار شاعر اسلوب عربی میگه ولو رد نه نور دل که همسرتن من اگر ما میخرسیم برای همسری از این نو بیاریم خیلی خیلی زیاد بود میتونستیم برای نمونه بیاریم و خصوصا شگفتیم زیبا این تمام شد تو اینکه من این رو گفتم امروز هم اول مبحث گفتم و اینجا شاعر ما این صالب کتاب ما اشتباه کردن مثل همون بحث توی اون تشبیه تمثیلی که سنن الله بینهن ابتداو که اشتباه کرد اینجا هم اشتباه کرد ببینید ما گفتیم که قوی ترین تشبیه تشبیه بلیغه ضعیف تشبیه تشبیه که هم مرسله هم مفصله واسطیا متوسطان متوسطان بعد گفتیم ولی اینکه کدومشون خوبتر از اون یکی هستن کدومشون بلیقترن شیواترن هیچ کدوم همهشون سر جای خودشون به کار برن قشنگن در غیر سر جای خودشون به کار برن اصلا بلاغت ندارن درست شد اینو گفتیم این مطلب تمام شد این اینجا اومده تشبیه بلیق رو اینطور احساس کرده که انگار بلیقه یعنی بلاغتش بیشتر نه بلیقه یعنی مبالغش بیشتره و اگر شما داری غزل میگی از تشبیه نوعی یک استفاده کنی که مرسل و مفصله درست نیست یه جایی داری توضیح میخوای بدی از تشبیه بلیغ استفاده کنی که برای مبالغه درست نیست قلی سر جای خودش نگاه کنید حاذی هی بلاغت التشبيه این که تا اینجا توضیح دادیم بلاغت تشبیه هست من حیث مبلغ تراافتهی و بعد مرماه و مقدار مافیه من خیال این مقداری که ما الان تا اینجا توضیح دادیم زیبایی تشبیه است از جهت مبلغ اندازه نایابیش ترافتش و دور بودن از دسترسش و مقدار آنچه که درش از خیال هست این از این لحاظ ما بحث کردیم که تا به حال هم بهتون گفتیم که به ذهن هر کسی نمیرسه خیلی زیباست نه کذا و کذا این از این لحاظ اما میگه از لحاظ شکلی چی؟ میگه اما بلاغتوه اینجا باید جای بلاغت بگه او. اما مبالغش منحیث صورت کلامیت منحیث از سورت الکلامیت و لتی یوز و فیها از جهت شکل مبالغش چطوریه؟ مبالغه میگه فعقل تشبیحات مرتبتاً فیل بلاغت باید بگه فیل مبالغه کمترین تشبیحات از جهت مرتبه در مبالغه اینجا بلاغت من مبالغه است موضوع که رد ارکان هو جمعیه اونیه که همه ارکانش ذکر شد این از همه مبالغش کمتره این برای توضیحه لأن نه بلاغت التشبيه یعنی مبالغت التشبيه مبنیه تون عل ادا المشبه مشبع المشبه بید. و زیرا مبالغه تشبیه پای و اساسش بر اینه که شما مشبهتون بگید عین مشبعون به و وجود آن عداد و ورج شبه معن یهولان یعنی یمنگان دون حاضر الد وقتی شما اداه تشبیه آوردی و بعد شبه هم آوردی این یعنی میگه این مثل اینه نمیگه خودشه اگه بگی زیر چیر است به توهم آدم میاد واغا زید چون نگفتید مثله نگفتید در چه ولی اگه گفتی مثله در چه رابطه ای خوب این دیگه مثل هم هستن نه عین هم مبالغهش کند لأن بلاغت التشبیه مبنیت علی ادعاع عن المشبهه عین المشبهب و وجود و و وجود و و وجف شبه معن یه دونه ها زلده فا ازا حوضه عدات و وحده ها فتل و وحده ها اگر عدات به تنهایی هست pay او شبه وحده او یا وجه شبه به تنهایی هست بشه ارتفع درجه درجت و مبالغه فی مبالغت قلیلا یه مقدار تو مبالغه میره بالا متوس نعم نه ح و اهد حاضن یا قوی ادعا تحاد مشببه و مشببه بعضه اگر یکی از این حالا حذ کنید تقویت میکنه ادعای مشبه و مشببهبه و تا حدیبع تقویت یه مقدار تقویت میکنه میشه متوسط اما ابلغ و انواع تشبیح اما مبالغه آمیز ترین انواع تشبیح و تشبی تشبیه بلیغه. نه اون مبنیون زیرا پایو و اساسش بلینه که مبنیون على دعا ان مشب به اول مشبورتهشه اون داره پای اساسش برین که این همه میگه ذ شیر است در ظاهر داره میگه ذید خود شره. ولی وقتی ما فکر میکنیم میگیم خب منظورش نیست که خود شیرره یعنی دوم داره و سوم داره. منظورش یعنی مثلونهه. بعدا منظورش این نیست که مثل اونه در همه چیز بلکه منظورش اینه که مثل اون در جت این میفهمیم در ظاهر اینه داافت. تمام اما این دسم سوم که میگه هازا این هازا یعنی خوزا اینا رو بگیرداشته باشین دوتا موردی که قبل خوندیم هازا یعنی خوزا این بگیر داشته باش نقط سر خط این وقت اول مبحث سوامه ببینید گوش کنید این دیگه ساده است فرهنگ تشبیه چه تو فارسی چه تو ترکی چه تو عربی چه تو کردی چه تو انگلیسی همه اقسامش همینه تشبیه مرسل مجمل مفصل معکد تشبیه بلیغ تشبیه تمثیلی همینن اما اما فرهنگ ماها فرهنگ هرکی از اقوام نوع ملات این تشبیهاتو فرموده مثلا ما گوش کنیم گوش کنیم مثلا مثلا نمونه اگر ما توی مثلا فارسی بخواهیم یک کسی رو تشبیه کنیم به اینکه این به چیزی تشبیهش کنیم که ضعیفه میگیم مثل موش میمونه. تو ما تشبیهش میکنیم به موش. میگیم تا بگیم فلانی مثل موش میمونه یعنی اینکه ضعیفه در ذات مثل موشه تشبیه کردیم اما تو عربی اینو به موش نمیکنند موش در فرهنگ اونها اگه بکنی بگی مثل موشه یعنی این که هرچی داره میبره قایم میکنه. بلکه اونها برای اینکه بگن مثل موش میمونه تشبیهشون اینه که تشبیهش مون به شطور مر چون اونها تو فرهنگشون شطور مرغ اون سر چیزه. یه نفر از دورم ببینه پا رو میذاره به فرار. تشبیه به شطور پس اگر یک جایی ما مثلا فرض کنیم گفتیم فلانی موش است، اگر خواستیم اینو تشبیح رو ترجمه کنیم به عربی بگه عربی بگیم نباید بگیم نهو کن فعرته باید بگیم نهو کن نعامته درست شد؟ اون میفهمه فرهنگا و یه جاهایی هم با هم یکی هستیم مثلا ما در شجاحت به بشیر میکنیم اونا هم در شجاعت تشبیه بشیر میکنیم درست شو حالا پس بنابراین اینا اگه فهمیدیم یادمون باشه یادمون باشه که چی به چی تشبیه میشه مثلا ما در شجاعت تشبیه میکنیم به رستم مثل رستمیه برا خودش اونا تشبیه میکنن به عمر ابن معدی کرد درست فرهنگ رو باید بدانیم نگاه کنید و قد جرال عرب و المهدسون عرب ها و مهدسون نیچه از دوره جاهلیت تا الان قد جرا عل عرب و المحدثون الا تشبیه الجواد بالبهر آدم بخشنده رو تشبیه میکنن به دریا ما هم تشبیه میکنم و المت تشبیه میکنن به باران تشبیه میکنیم به عرب و شجاع آدم شجاع رو تشبیه میکنن درست و شجاع به العزت شجاع به و الحسن کسی که زیباست زیباس تشبیهش میکنم به شمس و القمر ما هم میکنم به شمس و و شحم مازی شحم یعنی آدم با شهامت مازی یعنی قاطع آدم با شهامت و قاطع رو در امور که با شهامت است و قاطع در اموره آدم قاطع در کارگاه و با شهامت تشبیه میکنم به سیف به شمشیر میگن بولا شمشیر میگن با شهامت و برنده ول آل منزله آدم بلند مرتبه رو تشبیه میکنم به نجم به ستاره ول حلیم رزین آدم حلیم سبور رزین سنگین با وقار تشبیهش میکنم بلجبه میگم مثل کوه میمون ول امانی امانی جمع امنیگه یعنی آرزو ول امانی یک کازه و آرزوهای دروغین تشبیر میکنن به اهلام به خواب خوش اهلام جمع حلم خواب خوش آرزوهای دروغین تشبیر میشه به خوابهای خوش به اقل خوابیده پول خواب میبینه برنده شدن خواب میدارم چون چیزی چی نیست آرزوهای دروغین هم ول وجه سبیه صورت گشاده صورت باز نورانی تشبیر میشه به دینار که ما تو این شهرام خودم و شعر الفاهم فاهم یعنی سیاه مثل زغال فهم زغال موی سیاه تشروی میشه به لیل به شب و ما اصافی توی این شعرامون داشتیم آب زلال تشروی میشه به لجیل به نغره و لیل شب تشروی میشه به موجل بر تو شعر امرو لغیس داشتیم و لیل این که موجل بر ارخواست دونه خود. و, و جش لشکر، لشکر یال لشکر خودمون، لشکر دشمن، لشکر بزرگ تشمی میشه به بحر زاخر به دریای خروشان. یعنی این لشکر مثل دریای خروشان بر دشمن هم ور. تو فرهنگ اردمون است. ول خیل اسب، اصف. اسبان تشبیه میشن به ریحه و یعنی اس مثل باد یا این اس مثل برق که داشتیم الجوادو و برغون خاطر که خوندیم با و نجوم ستاره های آسمان تشبیه میشه به درر ولزهار، به دور و گوهر و شکوفه ها اسنان دندان ها دندان های محشوق و محبوبه تشبیل برد،, برد برد برد یعنی تگرک دندان زیبای معشوق تشبیر میشه به تگرگ و لعن و به لولو و گوهر. و سفن کشتی ها تو قرآن هست تشبیر میشه به الجبال به کوه‌ها. کشتی های میگه مثل کوههایی در دریا در حرکت در عزمت ول جداوه که توی باغات هست. تشبیه میشه به الحیات الملتوی به مارهایی که پیچ پیچ فرده. این جویها که از لابلای درختان میره تشبیح شده تو شهرها به مارهایی که پیچ و تاب خورد و شیب پیری پیری تشبیح شده به نهار و لمع سیور میگه پیری مثل روز مشخص شده در چهره او یا پیری مثل درخشش شمشیر بر او هویدا شد و لمع سویور. نتلفر از این قسمت سفید گردی پیشانی اسب قررهش میگن. اون پیشانی سفید هست تشبیه میشه هلال، به هلال به ما. این تا اینجا خوب این فرهنگ وواادشوی بقیش هم مثل همین یاد بگیریم که ما کنیم طبق فرهنگ خودمون نفهمیم تو هر زبانی، برای چی که چی به چی تشبیه میشه به قول خودمون فرهنگ وجود حالا باز دوباره یوشبهونل جبان آدم ترسور رو تشبیه میکنن به نعامت و زبابت نعامه شطرمخ زباب مگس اگه بگن مثل مگس میمونه ما ممکنه تو فرهنگمون این باشه که هر کجا که کسیفه میشه. ولی اونها مثل مگسه یعنی این که دستو بلند میکنی میپره در سوی نعامه همینطور ما موش داریم اینجا و لئیم آدم پست آدم مکار تشبوشه به سعلب روباه مامور اینطوریه و تایش آدم بیعقل بیباک آه؟ بی باک ما بی آدم این تشبوشه به فراش به پروانه پروانه ما ممكن اصلا تو فرهنگمون بجه تشبیه پروانه کنیم خیلی هم مثبت باشه اونجا اینطور نیست چرا چون پروانه دور آتیش میچرخه دور شب می می می می بله هم میچرخه پاش می‌سوزه برش می‌سوزه این ورش می‌سوزه اون ورش رو من نمی‌کنم تو می‌سوزه اونم نداره که بیباک. بی باک بی جلل آدم بی به پروانه و ذلیل آدم ذلیل به میخ ما هم میگیم مثل میخ میمونه هیچ بخاریا زشتن چرا چون میخو میذارن می چکش بزنی روش. بیشتر فرو میره سفتر میشه این هم هم هیچ اراده برای فرار کردن نداره ولقاس، ولقاسی آدم سنگ دل تشبیه میشه به حدید میگه مثل آهن میمونه و سخر تشبیه میشه به تخت سنگ ولبلید آدم کودن، تشبیه میشه بلهمار تو فرنگ هر دومون هست بخیل آدم بخیل تشبیه میشه بله عرزل مجد به بابا جاد یعنی قرطی بله عرزل یعنی به سرزمین قرطی زده. بخیل مثل سرزمینی که قرطی دشمن. یکی چیکش در نمی‌کنه. ازش یکی دار. اینجا بعد باز همین تو این زاویه است. یک کسانی توی فرهنگ عربی و توی فرهنگ ما و هر فرهنگ دیگه مشهور به یه صفاتی هم. ما باید یاد بگیریم که اگه کسی رو بگیریم، مثلا کسی رو با حاتم تایی تشبیه گونن در بخشندگی دیگه این در شجاعت نیست درست شد میگه فقط اشتهر هره رجالون من الهره به خلال خلال جمع خللت یعنی خسلت مشهور شدن مردانی از عرب به خصلت هایی که محموده خیلی خوبه فسال و فیغا علامن. پس این مردمان در اون صفات علم شدند یعنی این مصالحات در صفت جود علمه خب میگه محموده فصارو فیها علاما فجرت تشبیه به لذا تشبیه میخوام بکنم به این اعلام تشبیه میکنن مثلا فیاشب به الوفیو به سماوال سماوال ابن عادیای شاعر یهودی یه جاهلی بوده تو وفادار بوده حتی امرالغ یک سری وسایل پیش خود اینجا امانت گذاشت بعد خانواده و قبیله امرالغی اومدن بگیرن نداد بعد گروگان گر گرفتن گفتن میکشیم خیانت نکرد تو امانت نث شده مظهر وفا دست شد یعنی مثال تو فرهنگ عربی مال ما ممکنه مظهر وفا حضرت عباس باشم فَیُشَبَّهُ به بِسَمَاءٍ وَعَل. آدم با وفا رو تشبیه میگن این آقا سما و علی است. ول کریم به حاتم, حاتم توی ول عادل به عمر، در فرهنگ اونها خلیفه دوم، در فرهنگ ما امیرالمومنین علی علیه السلام میگه او مثل علی عادل است. ول عادل به عمر، ول حلیم، آدم سبور به احمد بن زئس شخصی بوده در بسره خیلی آدم عاقل و صبوری بوده به مله فسیح آدم فسیح به سعبان این سعبان یک خطیبی بوده منبری بوده ها و آدمی که خیلی زبان باز باشه و زباندار باشه تشبیه میشه به سعبان بل خطیب سخنران به قصد می سایده این بازی بازی خطیب خیلی چیزی بوده که تا گفته هم با بعد همه ساکت میشه سخنران بوده و شجاع شجاع به عمر ابن کرده کرب ما مثلا به راستن ول حکیم تو قرآن اسمش هست دیگه لغمان, ها؟ نه لغمان از حکمت برخوردار داشت حالا اینکه که پیامبر پیانبر بوده یا پیانبر نبوده اختلاف به نظر میاد که پیامبر باشه سورهی هم در قرآن هست سورهی لغمان از همین لغمان به نیکی یاد میکنه و به نظر میاد فصلت که داره پیانبر و زکی آدم باهوش تشبیه شده به ایاس ای آدم باهوشی بوده موشمند بود. مشتهر آخرون یه عده دیگه هم شدن به صفات زمیوته با یک صفاتی که زمیل است مظهر صفت زشت مثل میزه هیتلر مثل چنگیز اینا در خون ریزیز بگنی آقای چنگیزیه برا خودش هیتلریه یه برا خودش برو چه؟ بشتر آخرون به صفات زمیبت و تشبیه تشبیحو به هم ایزن فیوشت به حال یا به باقل ایی یعنی کسی که لکنت زبان داره نمیتونه حرف بزنه آدمی که لکنت زبان داریم تو هر بزرده شده به باقل این باقل یه نفری بوده لکنت زبان داشته میگن یه روزی آهو خرید یازده دینار یازده درهم آورد یه نفر تو راه بسته بود آهو هره تنابشو گرفته بود اومد بهش گفتین چند خریدی خواست بگی یازده درهم انگشتای دستشو دوتارو باز کرد شد ده تا زبونش خواست در بیاره وسطش بشه یازده تا آ طول میکشین مثلا تشبیه میکنن به باقی وله احمق آدم احمق به هبن نقه این هبن توی فرهنگ عربی مثل مولا نصر الدین مصر. هر نوجوکی و نو چیزی رو بهش نسبت مثل مولا نصر الدین ول احمق به هبن نقه و نادم آدم پشیمان بلکوسعی این شخص مظهر پشیمان میگن یه کمانی رو درست کرد و توی یه جایی وایستاده بود که یه شیار بود این حیوانات در شب می آمدن برن آب بخورن این گوره خرا این تیر می زاش می زد. این گوره پشت سر هم می آمدن این تیر میخورد به گوره خره میافتاد و اون یکی پشتش می آمد وای میستاد این فکر می کرد نخورده دوباره می زد 5 تا تیر زد دید بازم گوره خره ساده رسو کمانی رو که خیلی روش مثلا چند ماه کار کرده بود و درست کرده اون شکست داد فردوست هم اومد دید هر پنجتا تیر خورده به گردن این گوره خرقا و اینا شکار شدن اون نفهمیده میده. اینو که دید پشیمون شد از اینکه چرا یه همچین کمانی رو عجله کرده شکسته لذا انگشت شست خودشو کرد تو دهنشو کرد از پشیمانی. بعد از این نمونه شد تو پشیمانی میگن این آقا یک در پشیمانی که نسبت به خریدن مثلا این خونه کرد ولی بخیل به مارد، آدم بخیل رو به ماردتش میکنم ما میگن این بخیل بود، میرفت زیر شطور شروع میکرد به شیر خوردان از شطور که مبا دو به دوشه یه چیزی به کاسه واساش مالی بده، یه قطره این بر بر بریزه. این بخیل بود. کسی که جیغ یا صدای شیر دوشیدن بیاد، کسی بیاد شیر بخواد. بخیل به مارد. مال حجا، آدم حجا به هتل که شاعر جاهلی است. این هتل شاعر بسیار همه از زبون این میترسیدن هرکی میدیدش میترسید حتی عمر اینو در دوره خودش به خاطر اینکه نوامیس مردم رو حجم کرد، انداخت توی چاه زندان کرد همه رو حجم کرد. حتی پدر و مادر خودش من ندیدم کسی بیاد خودشم حجم کنه. یه خودشم حجم کرد. آدم بددهن به خوته ولقاسی آدم سنگدهر به حجاج ابن یوسف ثقفی لعنتم لاحد اگه امیر المومنین میگه میگه قدر ما رو ندونستید کسی میاد که قدر ما رو میفهمید که بعد از او نزدیک پنجاه سال این حجاج ابن یوسف ثقفی آمد و به قول خودمون حکومت کرد مختار رو به شهادت رسوند نزدیک پنجاه سال حکومت یا بیش از شاید دیوی نفر رو در داخل دیوارهای کاخش زنده به گور کنید یک جبار و دیکتاتور تمام بحث تشبیه تمام شد. و صلی الله علی نبی یعنی و آله الطاهرین خوب بخوانید انشاءالله شاء برای اینکه بحث مجاز میخواد شروع بشه نسبت مسلط باشید. نصیحت من رو گوش کنید بعد بهره و لذت خاص خودتون ببرید. مؤید باشید ان خدا میکرد.